که از به خلق همین که با آنطاق آغذری گر نه با افصاق قانونشان که پیچانند توز از بر بستان دامش پیش ریزند از خرید بعد اینکه شعال ملک یه قصیده‌ای در مده تردوسی گفته بود مقداری در مده تردوسی شنیدم از شعال ملک رو گشت طبعاً از خواندن شعرش بگیم گفتن جرید گفت شاغر شری در سال ما اوناد نکنیم تاریخ می کارتون او بنگری این تاریخ این دو بیت ۳3 یا به سالی کمتر از مادر بزار29 یا ۳30 یا به سالی کمتر از مادر بزار هم به ۶65 کرد آغاز دستان دستری حال 365 نظم شمااررش در عوام چهار شد اسپری شهنافهش یازده سال دیگر شد عمر شاهر اسفرین دو سی و پنج ساولند در کتاب خیش رنج ماند از رنجی چنان گنجید بدیم تهنافری زنده شد ایجان از این شهنافه گرچه شاهرش خونه دل پرد ندید از بخت الا خود جود به در آغاز جهان دیدونش بود چون پزم شد گنج، رفت و آمد مؤسری ضرب کس نابرد زیرا کار فرماویان بسته هم چون سکه دل بر نقش ضرب جعفری و بعدا راجب هزاره فردوسی نبرای ساخته و که حالا تا امروز که مثلا تجبیر کردن اینجا هر 35 این 55 سال رو تازه مثل شهر سالش بوده 629 تا 665 622 تا 665 55 سالش بوده که تازه شروع میکنه به نظم شانه و قبل از اونم تغییر مغتدمونش بوده 55 سال هم کار میکنن که 25 سالش شانهمر رو. تمام میکنن نظم ده رو 10 سالی گرند تا قبل از تویشو تصفیح و درودن مقدمات و ارتباط دادن مطالب به هم و ساختن مقدمات هر فصل و هر داستان و ساختن مقدمه اصلی کتاب رو پردین کرده رو به قمیلی که قرار بکنه که تا تا 24-5 سال تا همون شده بود هنوز نمیدونستیم چه ها زیمان که که میگه یه جاکی من نمیدونم, نمیدونم که نگه نامون کی بکنم این حاصل عمر این مرد این باهنامه بوده و بعد هم آخر آن بشتن هشتاد سالگی برای یه ذره قرمه و یه ذره جو و یه ذره هیزان مهمتر بود نمان دار نمکسید نجو نجو نجو جو نه چیسی فتی دست خواه دو دست و دو من آهو گره تویید از یه ساق می روید برای آورد و چرخ بلند بگیدی چه دار مرا مستمن چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بزاشتی مرا کاش هرگز نه پروردی آن چه پروردی بودی نه یادردی آن بله ولی همون وقت انصوری از زیم دیگتان می و از در آلات خان می سا. چنین چنیندم که از زیم دیگتان به زر ساخت آلات خان انصوری بعد میگه که محصول که اون شعر که دفعی پشنگین میگه کنون کهش از آن سی نزد سی نیست و از آن دیگه دام کهش توجود اونطوری همه رو داشت ولی اونطوری نیست و احتمالاً این مرد در اون حالت گشنگی خوردن اون بعد وقتی این رو میگوید این بوزگار رو میگوید ارزم یک نکته یه میمیونه و این است که نظم شاهنامه رو هم کیش از فیردوسی. گفتم که اصلا مخلوقی مروزی که این کار کرده بود یکی دیگر هم بوده که او اثرش باقی مونده و ها در حیقی شاعر در حیقی به هزار, هزار و, و چند از شاهنامه رو ساخته بود درباره باره تردادشتی در و دین زرداشت که در جوانی به دست ای پشته شد فیردوسی میگه که جوانی شای خوی بدیار بود اما بعد ان شروع به کار بعد رو میاره در شاهنامه میگه چنین دیو گوینده یک شب خواب البته اعتمادا مخاوره میساختن خودی فردوسی هم چند جا آوایی داره که میگه داستان چنین از، یعنی از اصطلاح کلاغ داستان سرایی که چنین دیو گوینده یک شب خواب که یک جام می داشت چون گلاب فارسی دیجای پدیدامه بران جامعنه‌ای ها، زدیم به سردونسی آواز دادی که نه‌ای ما خور این خوابیزی که که چه و چه و ارگان در دوره پاچایی هستیم چی؟ بعد می‌گه زدگوشتاست و ارجاست فکر هزار بگفتم سر آمد مرآوزه‌زار تو نیزر بیابی بخیلی مکن اینو من رو من بعد که من این شعر آوردم اگر چه نفسم دیدم من که کنی که نگه نز بخصوست آمدن و زیده ای ناپن درست آمدن چه تبینده آفوچ و آو روان مبرده ای نامه خوزگوان دهان گرده ما آمد خوردن بهی از آن بهتناسات خواهد و به احتمال قدی، اولا که خب این هزار باید مونده و همه کس میکنه الان بخونه و با آنامه مقایسه بکنه من قابل مقایسه نیست یعنی احتمالا فردوسی این رو آورده برای اینکه نشون بده که اگر شاعر دیگری این شاهنامه میساخ یه چنین چیزی از آب در نمی اومد و به طور حت هیچ کس دیگری اون کسانی که میگن که خب کاری نکرده که یه قصه هایی بوده براش نزمی کرده هیچ آدم دیگری در طول تاریخ ما نبوده که اگر داستانا رو به نزمی آورد این که وافنده صحه از این به رسید. داره کده بعد هم اون ده رو آورده برای اینکه نشون بده و خود مردم ببینن در طول تاریخ اینو بهان لود کنید من داوری استادم هارون بعد از زمان و دیگران رو در باب شعر داشیش بخندید به نظرم اینجا آوردم چیز بود آوردم, اونجا آوردم. هرعرض کنم که نوشتن اینجا به استاد تو ش دقیگیر را نمیپند از آن انتقاد می که میاد کسی که تبعیون آب روان ندارد بهتر است از توی نام پتووان دست ندارد با آن که جای بحث تفصیدی در این باب نیست اما برقیه تمام معریوان استاد ندارد از جمله استال چادروان چار بعد یا زمان پروزانفر در سخن و سوخمبره حق با فردوسی و نه شعر که شعر هیچ شک از کراهای اندوان ملی و دینی و تاریخی به پای شعر فردوسی نرسیده بلکه به حریم آن نیست نزدیک نشده از این روز انتقاد فردوسی از شعر درمیدی را نمیتوان از مقبوله خود ستایی های شاعرانه و گذافه عاری از ح اما فردوسی که شعر دقیقه رو نپسندیده، چرا آن رو در شاهکار خدود میش آورده؟ ای که فردوسی در معخره‌ی خود بدان تصمیم جواب همین سؤال است که فردوسی از آوردن شعری که خود نمیپسندیده، در متن آنامه هیچ چه نظری داشته است؟ بهتر از معخره فردوسی رو بدینید، چون این نام افتاد در دست من، به ماهی گراهیان شد چست من دگه کردم این نظم و سست به یک سیبه درست آمده من این زن بگفتن و تا شهریار به دانت توخن گفتن نابتا دو گوهر بو بودین با دو گوهر پروش خنون شاه دارد و گفتار روش توخن چون که دین بونه باید گفت مگوی دومتون تب با رنج جفت چون بند روان بینی و به که هر نیابی مکن چو تبیی نباشد چو آق روان مبرده از زینام و یه دهان گر به ما آمد زخوردن بهی از آن بهت ناساز خان. و بعد البته بعدش چیز میکنه که گرفتم به گوینده بر آفرین، یعنی حق بشم واس ادا میکنی که پیون راه, راه دادن در این این هست. اگرچه نفعی و روز اندکی ز از موز از هزاران یکی همون رو گوینده را راه برد که بینچان شاهی ابرگاه برد همی یافت از مهتران هر جو گنج به خود به بده سیست برنج سر انجام وقت برگشته شد به دست ایزی بنده برد شد خدایا ببخشا گناه برای یه سال در هشت جاه. ارز کنم که چون که ارز کنم هیچ کس به تیوروسی بعد او هم نرسیدن، از او هم نرسیدن این یک قدیقه یگانه است در تمام تاریخ عدد فرس هیچ بچ یه نظریه روی قبلش کشته، بعدش و یکی از الگت های جا بگم شدن اینکه تاریخ مزورتی همین است به سره بندر ایسی نفس بکشم، بعد ارز ارگانشم بعد یه چند کلیمان راجب این تو حالا ما این مطلبی که من میخوام مگم چون این توها هست من دیگه زیاد راجبش حرف نمیزنم دیستان همونو بخونم من خیلی کم میگم و بعد این خیلی زنده باره و او این هست که تو این شاهنامه چی نوشتی؟ کتاب که اینجا بینید بر روی پنجا دو هزار بیت فعلا این چیه؟ دواب این است که هر کتابی که نوشته میشه احیاناً نه در ایران که شاید در همه دنیا یه میداریم مقدمات ببین در ایران همه هم. ایران فقط یه دونه کتابی که بی هیچ مقدمه شروع میشه بشنوین نه چون شکایت می کند از جدایی های پاید حاله و البته تمام کتابای دیگه اولش حمد خداست بدون شک بعد نعت پیغمبر حتی اگر قالی هم باشه یعمی باشه دردویش باشه یا قصری باشه پیغمبر خودتون دیگه به حال نعت پیغمبر که البته بیشتر خوب مسلمان بودن بعد عرض کنم که چیز بعد اگه می باشه خورخهای راشدینه، اگه یه باشه عیمه بعد مثلا مطالب این موت فرقه دیگری هست از قبیل که چطور شد من این کتاب رو نظم کردن یا کی موجب شد بعد تقدیم به اون شخصی که میشه بعد متحه بود متحه سکلتان با یه سری مطالب دیگری که خود نویسنده یا شاعر تلاح میدونه در مقدمه یعنی پیش از گرود و مثلا به همه بگیر شعر کتاب ها است هست بولستون دیباچه داره دوستان مقدمه داره همین تا قسمت هم. اول شاهنامی مقدمه است مخصل نسبتاً. شروع میشه با به نام خداوند جامو خرد که از این برتر هم میشه بر نزید خداوند نام خداوند جای خداوند روزی به رحمه خدا تو و برنت پیغمبر از تو برد چون شیعه بوده فردوسی و هیچ تردیم نیست و چود قدم های شوهر یکی اوست که مسلم است یکی شکی نیست یکی هم کسایی مروزیه در سال 341 به دنیا آمدید یکی احسایی از تایی بودید او هم شیعه بوده و اما در این چه جور شیعهی بوده باز تردید بسیار هست اولین نظری که اظهار شد قبلن بگم که شیعه تقه ها دست های مختلف داره مفصل تنین بزرگترینش همون شیعه دوازدن امامی یا اسماعشری که جعفری بهش میگن امامی هم بهش میگن امامیه امامی بهش امامی میگن جعفری هم میگن اسماعشری هم میگن بخش دقم فرقه فرغه که برای فاصله از لحاظ اهمیت بعد از اینش شیعه اسماعیلی اسمایی دیگه اعتقاضات مفصلی پیچیده عجیب غریبی دارن و از جنبه اینکه همیشه معتقدم که امام حاضر باید باشه ما امام قایب که چه فاید بسه. فاید بسه. فاید امام بسه. فاید بسه. فاید. و دوره های دارن یعنی یه هفته آز. بعد یه هفته هاییه بعد یه هفته ای دیگه. که هم عرض کنم که علت اینم که ای نشید شدن اولاً مثلا دوازده امامی و هفت امامی مسئله مهم اون که ما هیچ بهش توجه نگلیم تأثیر قوق شدید عدد دوازده و عدد هفت کنیم عدد بسیار بسیار شاخص بسیار بسیار مهم است دوازده و یه خود مزرگ بارتش هفته به دو هم خیلی زیاد بکنم چه چه. به, به دو چه به چه دو تنشهیدهایی کرد به یک به دو به سه به چهار و، به 6 به 8 به 9 خابه با, با هم به 24 و, و بعد به بیسی 12 به 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قابل بسکنه دو برش 24 و قابل بنابراین اینا اعداد بسیار بسیار تقسیم است و به همین دلیل است که مدت های مدید دوستان که رشته بیرازی میدونن مدت های مدید اعداد بر مبنای 60 بود بر مبنای 6 دورد تقسیم دایره 236 دریجه تقسیم ساعت 266 دریجه دقیقه 60 ثانی شبانه بود 24 ساعت که میشه چمانه 20 ساعت درست ولی علتش این بوده که او رو خیلی تقسیم پذیر کرد و بسیاری مطالب بر چه الان شما بگم ساعت 4 و نیل میبینستی 4 یه ممیز میزنید بلی بر طبق اون حسابی که تو ابتدایی یاد دادن این میشه چهار ممایه سده هم, ده هم ساعت. یا سده هم سده همه ده هم میشه ایزده یکه چه هسته ولی شما میگید سی چهارمی برای اینکه ساعت و نوشتن ساعت بر مبنای هسته تمام محاسبهای های هندسی و درجه زبایه مسلط و اینات برمبنایش دلیل تصمی این مال عدد چیش و با سه که عدد خیلی مهمی هست برای اینکه ساعت ممکن مسلطی و خیلی مطاله بودی که من بحث نه هم تویار میدوندن این است که یک گسته از مبنای کارست میگوشتم از دوازده عکس قضیه عدد هفت یعنی عدد هفت نه اینکه که عدد اول از تو به هیچ عدنگی قابل قسمت نیست که هیچ حتی قاعده تقسیم پذیریش هم هنوز پیدا نکرد یعنی الان شما در مرسیه کبایی بتون یاد می‌دن که اگر عدد آخر زود باشه بود یا سه، باشه دو قابل قسمت اگه سه سه ترکنی که باقی نمانه به سه قابل قسمت به همجوری الاخه عدد هفت رو می‌گنم ما می‌دونیم کنیم به هفت قابل قسمت هست بیش قایده‌ای عدد اول همه هست و به همین دلیل دوز عدد مقدس به حساب مده هفت اندامه ظاهر، هفت اندامه هفت سیاره، هفت تراغه آسانون، هفت تراغه زمین و امتال اینا به مرهوم دوستمانی یک کتابی که دران عدد هفت و در هفت بکر نظامی شد 300 تا شد 500 تا مورد را جا هفت آورده یه دستن هفت امامی و علت هفت امامی شده چون این بود که گفتن که از اون ساده که امامی ششون که سری به آن این اسماعیل رو بعد از خودشون تحییم فرمیده بودن پرزند بزرگشون تحییم فرمیده بودنشون به عنوان امام بعد اتفاقا اسماعیل در دوران پدر بعد اسمایلیه میگن در اراده خدا که بدا حاصل نمیشه خدا که مثل من شما نیست که این باید یه دیگه باید از تحصیم پشه نمیشه اگر که بار خداست و اگر اسماعیل از جان خدا تقییم شدید، یکی عزل منشو بشید گروتان که اینسا عزلش کنید، فرقاوار این همونه بعد هم معتقد بود که نه این زنده بود و نمون قایب شد و اصلا نرخواهی که ما هم و این ترتیب در سیکل هفت واقع نمید اما اسماعیلیه رو برقدیم که گرهت مسلمان نمیدونستن و ملاهده بهشون می‌گفتن هم همونی بوده است و اینا به معاد جسمانی اعتقاد نداشتن و معاد جز اصول سگانه دین یعنی دین اسلام خطا از خطا خایره یکی اقرار به خداونده‌ی خدا یکی اقرار به تیرنبری تیرنبر و خاتم‌النبی‌ها بودنش یکی اقرار به معاد جسمانی از با همین تنگ روز قیامت برنگیشته میشی از حاک و باید برید حساب کتاب که به نظر اسماعید که این خیلی معقول نباشه بحث میتردن در این باب و گفتم چون به معادش اسماعی اعتقال ندارن اونا از این خارجه چون هم بایده و اونها هم یه مدتی به خشونت باورده بودن تیر که بدتر و داختانش رو خوندید دارن اینجا نه این بحث های فلسفی رضایی خواهد این هم پیش نمی و الان دیگه قابل تحمل همه هستن ها چی چیستن حال یه فرقه که بیشتر در, در هند و پایستان هستن اکثرشون و هنوز هم زندگی مرموزی دارن که خودشون رو هم نمیگن جامعه شمی کسی نمیگنه اما رای آتوبار باست کنید جلخه که نمیگسی رایی دارد به بعد و که خود رشته های مختلف، یعنی های مختلف داره نظاریگی اصلا مفتحالایگی هستن و دسته های مختلف و یه مدتی یعنی هم یه خلافت مفصلی از, از مصر هشکیل یه دسته دیگه از هر ستای و یه زیدیز. که پیش زید ابن, ابن و بلیه زیدی اعتقدن که اولا در آن واحد میشه چند امام کنید که امام چه که علم کافی برای رهبری داشته باشه و قیام به ستیت هم بکنه اصلاحی اصلاحی این است که امام بعد به شمشی نفر است و بیشتر شورشی دانشیه از زیگی داشتن و الان در یعنمه بیشتی البته یک چیز هم از قل در هدف آدم بزرگ میشه همراهش چرا؟ یک خیلی اصلا ندهت امام داشت که امام کسیس که امام اصلا اصلا به ساعت شگه هنوز امام اصلا بود که شگه نشده بگید هم به خلافت سلام کرده امامات بعد در دوره کلنگی و دوره تاخی و اروسید تاخی و علمه ها و خاندان نوبختی و که های تیوریت و یگولوژیت و امامت حدیم حال کنم که زید میگه امام باید بیام به سیر ببینن و هرکسی هم میاد به سیر که اهل ما دوست امام دو با هم داشتن مشکل داره اساس حدیث اینه درباره اش یه بودن فیروزی یه نظر اظهار شده اول همه مردم هویت ثوابا بودن عقلایی و اونجا گفتن که فیروزی اینه زید مردم این گرفتاری های داشته کنه داشت. یعنی داشت. یکی این بود که محجور پسندی دنبال در این خیلی از این یکیش که اصرار زیاد که سعدی عرب بوده اصلا و از قبیله سعد غیور از صحابه بوده اینکه من که من که دلیل سعدی خواهد که به اسم اون از قبل بروی ساعتی به مفسر و از مفصل یا مثلا دوتا خیام موجود داشت یکی خیام مرجم بوده خیام صاحب و در مورد فردوسی هم مثال نظر کرده از خدا رحمت چون اون می که بعد از اون دفتر زریاب از خوضرهای درگیجی تو بران افاس زریاب خوری اخیران در مجله ایرانیانه ی مختصری دوشته بود و در سرمقاله مجلی ایرانیان روشتیم و جا دوشته بید که معلیمات و اطلاعات در مقدمه زمانه میده اینا شباهت داره به اطول که یعنی مطالب فلسفی که اسمایی یه پایه های اردهات را بشون در از درنم بگن که اشمانی یه روشن بگیدن اسلامی هم بیده. و از جمله چوبش هم که بردن برای اینکه مهاده جسمانی هزار شبه درش میشه کرد و اینا به عهدشون داخل میاده و از یه طرف هم حضرینی بوده چوبش روشن ولی خب بحثای فلسطی کردن و رسپلال کردن و چه این است که آقای زریاب که است که در باب آخری جهان این برای به از از آغاز باید که دانی نخست درست سر مایه گوهران از نخست یزدان ز ناچیز چیز آخرید خیدان تا توانایی آمد قدید وز او مایه گوهر آمد چهار براورد بیرنج و بیرنج دا یکی آخش تاب تابنات میان باد و آب از بر میخواد نخستین که آتش ز جنبش نمید. هستگرمی <lad star suspense> از خوشکیه آمد مدید آخر مطالب که که درست درگیاب اصحار اقضی بکنم که اینا شباهت کرد و اونجا در داره شدقت آرامینا اصماریتی و اخیراً بر این مجله در این مجلی در این مانوانیت و بعد در اونجایست شمعیش هم مزید درم مجلی درم دوست بسیار عزیزی درم درم تهند درم در جمعید بیاد تکتر احمد الان هم در این این و در هر بار تدیس میکنه و مرد عالی خاضر ایس در عربیت و عددیت این این بیاد بیزای داره و اونجا تدیس کنه در هر بار که مقاله ای دوت کردن به انکان بنده در عجبیانش میکنه و مقاله و متخنی و مستندی به دقیقت همچه تمامتر با توجه به همین بقدمه شاهنامه که فردوتیش دویه دواجه و تنه دادن و اگر یک که کار بگم این مقدمه چون در همه کتاب ها هست بعضی کتاب ها هم داره که بله من مثلا اینقدر هم پدرم در اومد چی شد یا این کتاب مثلا این مدتی مولد هر خواهی تو معلق از, از کتاب خیلیش خواهد از این که میبذاریم وارد مطلب اصلی بسید بنابراین بحث ما راجع به مطلب اصلی است نه مطلب, بحث. ما رو رو مطلب اصلی است خانه رو تو که دو دو, دو یک دهانشان همه هست اول بخش اساطیبی یعنی بخش ایترازی بخش دوبان بخش تقریبا میدم که چقدر و چون مهمترین بخش هست آخر همه را بخش دوپن، بخش بخش بخش تاریخی بخش تاریخی در حقیقت از اول ساسانیان شده میشه راجبه اشکانیان تقریبا و این بخش تاریخی که مقداری افثانه هست مثلاً برای دوران بهرانگور برای دوران همچیگوان برای دوران شاپیر الانداخ برای دوران هرگشی یه سری ها هم در سردولاشون ها وارد شدید ولی کتاب‌های تاریخ هم این هم افثانه ها درش هست از مداریت قربت اسلام که آمده و به هر حال همون این بخش تاریخش همون هست در به تاریخ مختلف که قدیم در, فيد فيد در, در تاریخ اسپانی نوشتی در هم نظایر این برایت ها رو با اختلافات خیلی خیلی مختصری میتونیم پیدا کنیم در قرار و اخبار مونیکل پورس و یر این سعالوی، در تاریخ تبری، در موضوع ده هم در تاریخ امروی اسپانی و امسال اینا هست این بخش تاریخی هم یک ده ببخشیم ببخش. یک دهم ده شاهنامه بخش اصادیهی بخش یک سرپوم باقی شاهنامه این بخش وسطیش بخش همه که اگر اون یک سرپوم و یک ده و با هم جهندانی محنیش که اگر شاهنامه رو سیجه ده جزش اساکیویه جزش تاریخیه و دیده جزش نماسیه در همیدن بخش حالا بخش تاریخی رو من کاموش گفتم که چی بوده این لازم به توضیه نیست و و چه فرق دارن دایران آدم وقتی هم که می کنه فکر نمی کنید که کنی اینا پر بیدست و حقیقت هم این که حتی بخش تاریخی هم میام مثل مثل شبری مثل سایه و آفتاق اگر دقیقت کرده باشیم سایه یه دفعه یه خط نیست که باید آفتاق نیم سایه هست شب وقتی نخواه که یا رویز مخواه که یه مدتی نیم ساعتی دوسته ای اگر جاها مسترده بوشه بیشتر، نه شبه یا نور و باز همی کنه سایه و نیم سایه داستاناش بخشایش آنما یعنی بخش اساتیری یواش یواش تبدیل میشه و افشه همیاشید این به این ترتیب نیست یه خرد بکشیم بگیم تا فکر 3600 و 75 اساتیری از فکر 3600 و 76 بشه همیاشید همه همچنین که بخش هواسن خورک خور تبدیل میشه و بخش کاری یکی دیدید دلیل این که آخرین پادچهان همانکی و داراب و آخرین پادچهان همانکی دقیقاً قابل منگیم با داییی شکنیم ولی باقیشون برای اینکه مثلاً تارخونی که سرجان ملکم در اوایل قرم 19 هم و همه بودشته دارید تا تقییش آمده این رفته کتاب تاریخونی داشته بود این این کدیبه ها خونده نشد این دوهرده دو در جهانش نشد ترجام که تاریخش ترین میکنه مثلا ایشیش بسیار میکنه که بیدید که پیت و فو هم ندارم گوش شد اینا ایش امید... امید... ولی آخری ها هست یعنی کنترمون اون که اوانکار بران بازانه هم ها سکیه و همیزه تایده اینا اولا پس خط با خط اصلا دولده دوم این که بخش اساسی بخش ایست که بخش از خیلی آگه یعنی این آدم کن چجوری تن شدیم لباس تقییم چجوری قضا چجوری مسکن دایید بعد مسکن اول که شکاف دیگه بی کرد غارها بود بعد اون دوده هست چجوری حیبینات رو راخت را کردن چجوری کشاورزی کردن آتش رو چجور مهار کردن فلزات رو چجوری کردن خاندشی رو بی کردن برای آبیاری و هم مسئولی زندگی دلید. در بخش اساسی مثلا و می رو کرد یه ممصورد می که آفاس با از آفاس برای آفاس با این بر این که الان جنگال اینجا آفاس می گیره بیچ، بیچ، هستی که اوکی کسی بیران شدید با یه من از کنید بناباری این دوشنگ. آتش خوشان یکی پرهوشنگ این روز آتش در در برور شد این تونست آتش داشته باشه هر وقت میخواد دروس کنه هر وقت میخواد کامش کنه این مسئله که یا میگه جمشید مثلا جامعه رو به طبقات تخصیم کرد 50 سرطه تشمیرانی کرد منجاستان سرطه ساخت کرد منجاستان سرطه کنه درانقه با خندگی باید البته هزاران سال در عالم باقی بود با ولی مطلبش مطلب تا گذاشتن امسان هست که دروازه های انسانیت به بگر شدن و بعد هم مستقب شده این قدم که آدمیزار که آدم زیدن بردیگه آدم مختصر اید. بسیار مختصر تو که بسیار بسیار مهم و اولش هم آدم اصلا فکر نمیتونه بکنه که نزی جانه بیرون هر کنم اگر این تو راید بیرون باز کنه وقتی عجب باز کنم خود تضرسیم کنم کنم را مدان به چیزی زمان مدان الان از آن هر چه اندر خورد تا آخرت این این جون جمعه های میارن دیگه جنباز که اون چه انقبو کرده که کرده کرده جو ازان هر که اندر خورد تا آخرت دیگر برده رمز نمیاردن که به از اندازه که حال <سؤال> بعد یا که شد اما یک چیز کچونی اونجا که هرچی بیگه همه گفتن بر باق دانش همه گفتن اگر برگردی بر اومن جا نیاب از بر حال توانم مگر پایه خواستن برای شاه آن سرمی کسی شود, شود نخل بلند همان ساید رو باز بزن از این نام برنامه شخیار بمانم به گیتی یکی تو این را دروف و فسانه مدن به یک سان روش زمان زمانه ازو هر که اندر خورد باخرت دیگر فرار را بعد شرح از منصور عبدالرضا جهانوردان شاهنوار بود یکی نامه بود از گه بافتان فراوان به دو اندرون بافتان ها در دست هر و از ازو بهره نژ هر بدست یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و حضور و سرطمند را هجوهنده ی روزگار نخوز گذشت همه باز در کشوری مروبتی ساخر یا بر این از کیان جهان بزان نامداران و خرکتینهان که به چون داشتن این روم خود داشتن چگونه سرآمد آمد بر, بر آن روز کند آوری بگفتن این ششم یک نهان که همهان و ساها گشت جهان تو پشمین از ایشان سپه بر این نام برقوم بون را را را در جهان و رو آخرین هستی کسان همین که بعد که بعد از که دفتر, دفتر درست شد چون از دفتر داستان ها و خان همی خوانده هر کسی این تحکیه چون بود جهان دل نهاده بر این داستان این مردم علاقه بشنش جهان دل نهاده بر این داستان همان بخران می روز و هم جوانی بیا آمد دو زبان سخن هم دو خون خوب و به شعر آرم نام را گفت مند از اون شاهده خان شد دل انجمه جوانی شاهده بود بد یاد بود همستاره بابد به پیتار بود بدان دو یه بد جانشی بداد داد نبود در دل جهان درش یکی شاهد به از و بردشته شد به دست یک بنده بردشته شد برفت دو نامه ناگفته ما چنان بخت و بیدایی خفته بعد این, شده. این کل داختان وضعیه هست و ما هم شروع می کنیم شایدان بخش و شش بکنیم شو الله اگر پاشتا دیگرانم بودید که آزدن شو پاریدش این که در این که به خواهد به هم که نوشتن برای از ولی که پارندگاه یک مردار میخاشتن و آشنا وقت میگنن یعنی از بین بره و بعد این که آقای آنسر بولد این که زفن شاهنان رو بگید و این اولا از هزار کلمان هست خانم یه زنده هست در حال در بگید خدیبه ایست که زفن که ما مقابل پنسکر بگید یکی این که پردوسی اینجا گفتن که عربی میخواسته کنگه عربی میخواسته به گمه نفقه نوش افثانه شده میکنم گفتند که شاهنه دوتا لغت عربی داره حضا گفتی رو قدر گفته خلک گفت احسن خلک گفته گفتند که فقط هم اینا اینام بعد گفتن که اون فلک گفته به تو نارد بیشد اون گفت به فردوسی نه فردوسی میخواسته باقید عربی میاره نه به زبان روزگار خودش برای اینکه همه مردم بپن و الان همه توجه الان هم. اگه شما بریم سال‌هایی پیروز، است که باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید و برگوی هم یه اما در اون رو دگارت فردوسی و شامنه رو نه در بعد منبع منبع فرلاگی و فارسی بوده اگر منبع عربی بود، خب تا حتی از ایچ خود به ولی نبودیم با تمام این احوال ای آقای 23 سال پیش 20 سال پیش آقایی فرانسه هست که ما هم دیگه که برد برد برد مهمت که نه بعد ما رو کرده اسم خاد چقده، اسم آم چقده، عربی چقده، غیر عربی چقده، هندی چقده، سوردانی چقده اونم این تمام کارا رو با دقت که باید هم زبانشون کرده و اینکه هم شده این فرنساز کرده من دارم عربی دلست. ما تا هم می درسی آغازن نزایدریسی نمی سهره بگیرم بعضی ها بودن بستاب سار تاریخ و می گیرم که خاری خورش که با که یه مزار مطالی به تاریخ موقع هست یه منحسرم شد تاریخ وست با مورد مشکلی که تکامت نه رو با در فردوسی و زندگی فردوسی و شاهنامه حرف بزنیم و اصلا به مطلب نفردازیم بازم مطلب داریم که هنوز باقی مونده که حرف نزدیم خیلی زیاد به همین دلیل بنده اینو اتراشت میکنم و یه مزار مطالب اساسی که خیلی مهمه اینجور میگم که چاره ی جز دونستنش نیست برای آشنا شدن با شاهنامه بعد هم میپرزیم خود شاهنامه این شاهنامه گویندهش فردوسی ولی میدونید که هر کتاب نظمی یه منبع نصر قبلن داره خیلی خیلی نادره یک کتاب عددی که خود گوینده هم حصه شده